بین الطاقرین المعصومین و اللحفظ دارمتا و مطمئن فرحاجنی المشهرین یا رحم بحث حصول علم از کتاب و ما رسید به بحث دیگر و اون امکان داره گفت در معطقه جل مقید بشه به علم معمول نایمی امکان داره، توی ندیه طول یا نشد ترلید با که به همون خطابه و ظاهرش اصلاح بی این مناسبت بحث به این این مطلب هنوز یک بحثی راجبی این مطلب هست کار مرحوم استاد فرمودن تاثیر می نه این حالا حاصل بحث می زاریم. به این مناسبه بحث به اینجا رسید که ما پاره از احکام داریم. داریم که به حساب داریم به علم هست این صحبت به اینجا رسید. و ما این درست دیانه هیچی یکی رتفات دید هیچ بخص و و, و یکی هم در سفر چون در روایات داره که مثلا اگر ماه رمضان روز در سفر جاهدن روزه گرفت روزه درسته این چه گفتی این خلاق بایده است چون برای این حکم واقعی الهی است که در سفر نباید روزه بگیره جاهد باشه باشه باشه حالا که در روایات در روزه درسته پس مرگونه نیخون بقید نموابعه اون حکم وجوب افتار در سفر مقید به حیل میشه چون در سفر جهد تکلیف درست یک رو مقاید بین میشه این یه تفسیر اون خلاصه بس پس بس در اینجا دو قسمت میشه یکی اون فرق افکی که سه تا فرق افکی یکی هم اون تفسیر و که ما از این سه فرق افکی میدیم اون سه تا فرق افکی اگر شاهده هم کرد در نماز زب یا اخفاد در نماز مرد و شام نمازش درسته تشکلن. این فره اوله لبومی که اگر اتمام کرد در موضع افرس حالا اکتش هم روزه در برای افرس ها اونجا هم اگر جاهل بود نمازش درست این دو تا سر افرقی سر افرقی روزه ماه رمزان اگر در حال سفر جهلا روزه گره روزه شدرست ازا نماز. این سه تا سر افرقی این اول کلام در بحث و ماش ما تحلیل و از این ارائه داریم چون طبق دا قاعده اولیه ار و جه در احکام تاثیر نداریم قاعده اولیه شما آدم باشیم چه آدم نباشیم وقتی وظیفه انسان افتاره به وظیفه عمل نکرد یعنی وظیفه انسان وقتی افتار می افتاره کنه اینcontourاً فعلاً کاملاً فرمالیزانو على السفر انسان مسافر از اول تکلیفش به نیست به خارج محرم از اول تکلیفش به قضا و هم بنده سابقا روی اصولی مناسب هرین در سوم اون قضایی که در قرآن آمده تابه عنوان فوت نیست این تابه این عنوان ایست که از شما, شما روزه نگرفتیم قضا رو اسطلاح هم ما قضا رو در جایی بریم که فوت باشه همطور که گفته شده اغز مافاد کمافاد نده این روح اغز مافاد کمافاد نده یه اغزی مافاد ها او کمافاد رو داریم نه اغز مافاد کمافاد حالا قضا اصطلاحا در اون که دو مرتبه ها گای جام که در وقت مثلا صدا شده اعاده پس بحث قضا اصولا در جایی که فوت بشه در برآن کریم بحث فوت نیامده بحث این است که اصلا مسافر اساسا وزیفش قضاست فعید دارم به نعیام اخر اصلا توش عنوان فوت نیست منفاته و سوم توش نیست ولذا اهل سون نشونون قائل به تجوید صم در حال سفر هستن یا تغییر گرفتن من کا عمل کار امکن برریزه سفر سلام یک یه, یه تغییر اینجوری گرفتن. یا گفتن زیل آیه و ان و مختلفون نکن این امره به صاق اونظ آ که نیست خبللارش را. اون ز هم شال نیست اون زش را از تکمت باشه و ان ت مفقون نکن صوم به نظر شماست؟ چیزی به خدا برنمیگرد اون منفر از به شما برنگه لذا ما باشیم و ظاهر مبارکه در خدا آیه مبارکه عنوان فوت نیست مثلا وظیفه اولی مسافر قضاست تا من شهر ببینی کنم شن فلیاسون وظیفه اولی انسانی که حاضر روزت من کار نریزم و علا سفر فعیدت این ایام اخر. وزیفه اصلیه کسی که در حال سفر و مریضه که خارج از موارمزان این که روزه بگیره یا نگیره اصلا ناظر بینی نیست از اول وزیفه اش خارج موارمزان و آیه, قبل آیه قبلیش و علایدین یوشکونمون فیدیت فیغون هم تمام رو میسکن کسایی که به این که روزه بگیرم فدیه، این هم ظاهرش هم میدیگه و علایدین یوشکونمون پیر زم پیر مر اینا با به اصطلاح فدیه فدیه لوتر حمانی بدله کفاره نیست بدل روزه قضا بدن فدیه تا کام مسکین به مسکین به اصطلاح روزه بدن قضا بدن آزاد زاده امس عام پس سه تا حکم در ظاهر آیه مبارکه هست کسی که حاضر عادیش روزه کسی که مسافر عادیش قضا است کسی هم که موطیعه یک مریض یک مطیف. مریض مری کسی که در بدنش خلل ایجاد شده به خاطر اون خلل نمیشه روزی بگیره چون وقت خللی که در نزاج انسان در بدن انسان حاصل میشه به دو راهه یکی اینکه باعث غذای بیشتری بخوره تا قدامی رو بیگه یکی اینکه باعث دارو استعمال کنه اینکه مریض افسار باز بکنه سرش اینه چون به طور طبیعی مریض نمیشه حالا ممکنه یک مریضی باشه به قانون بحث دیگر است نمیخوان واضح بحث فقی بشه. پس یک مریض داریم اون کسی که در بدنش خللی هست اختلالی پیدا شده در مزاجش بدنش میدهش خوده هست احسابش بداخل احتیاج به جا رو داره خب چون احتیاج به داره داره. یه امساق میتونه بکنه؟ احتیاج به خضای بیشتر داره اون هم میتونه امساق و هلالنگین یوتیخونم و مطیق مطیق کسی که اختلال در بدنش نیست خود درد بکنه خلالی نیست مرضی پیدا نکرده نقصی نیست لکن خود بدن در حال طبیعیش توانایی نداره مثل پیرمان پیرمان صالح همون که پیرمان مثل فرنسون سال امساک از غذا بکنه حالا نه با دوازده سال امساکم بمیره بی میشه میخصه قشن کنه پس یک مریض داریم یک مطیق داریم برای مریض قضا برای مطیق هم بدرش قضا قضا بذاره به تعام و مثلیم فدیه, فدیه رو این ظاهر آیه بماله. ما باش، چیم روشن شد خیلی به نظر زاهی ها به نظر بیره باید هم ما با ما عبیانه ها که من شعر میکنم شد نمی کنم مرضه هستم من خیلی واضحه ظاهر آیه اینه اگر ظاهر آیه شد جهل و علم من که حکم عوض نمیکنه حالا من جاهل باشه یا نباشه مسافری که نمیدانه و از آره روز بگیره جهل و عرض نمیکنه باز غذا بکنه چون گفت مسافر و مریض غذا روشن شد نقطه فرمی بلکه در اینجا یک نقطه مشکل دیگه ای داره اگر لقص بکنیم. اصلا انسان جاهل به عنوان تکلیف نداره خطاب نداره اصلا آیه مبارکه عنوان خود توش نداره که حالا خطابی توش پرد روشه تو آیه مبارکه نکا مگر مگه همون انتصومور بگیم و الله مقتضای قائده اگر در ماه رمضان سفر رفت و جاهلا روزه گرفت باز این باطله فوقش جه عضل خود دقیقه تحلیل قانونی و خود دقیقه تول فوقش جهر عضل دیگه اما جهل امر درست میکنه امری که الان در ظاهر قرانه مصافره خطا اینکه اظهار پس شما دیگه امر اشون درست رو کنید دیگه امر روزه رو باید درست بکنید در نمیونه دلیلش اینه میشه انسان جاهل اگر روزه رو روزه درست باشه امر وقتی هیچ تو درست شما این روش تو اثر داره خب این به اصولی مشکل داره به لحاظ فقهی فتاوشون امنه تا اونجایی که من در بین معاصرین صدا درسا شده کم تا بیشتر در اوره خود اوره که اختیار کرده مشهور آن جهات صیام داره نه اینکه از معاصی مخالف باشه بعد گذشته ها نشد یعنی نمیره نقل قولی از مخالف سابقا شده چیزی که روزه باطل در حالت جنس خب اینجا مشکل خالص چیه که مشکلش از فقهی مثلا کسانی که حالا اخواری اصلای شدید تر غیر اخواری اصوله خب بناش روایت فهمده است اینکه درسته درسته ولی که دیدین خود مشکل مشکل فنیه این که چه کارش بکنیم از نظر توجیه و اصولی الان براتون روشانی که در اشتار چیه؟ خب دقیق بکنید ما غیر از حالا جهات فقیه خودمون و حوضه های خودمون خیلی خودتون رو آماده بکنید ما دیگه دنیا دنیا دنیای بازی شده خبم وقت با اهل سنت هم مناظره بکنیم صحبت بکنید خب اینا این بحثو مطرح میکنه شما قبل دید که این مطرح با خودمون مطرح کنیم چون مسئلهش اینه که یه چیزی اشغال میکنه جواب بدید خود ما رو مطرح بکنیم این سوال اینه اگر شما قائلین که در حال سفر امر نیست فقط امر به قضا خب شده در حال جعده خدا عبادت داریم بدون عمر درست بشه دسته چه عمری بکنه؟ حقی عمری این جهل شما فوقش میری شما معذوری عمر درست میکنه که جهل میکنه نیست عمر درست کنه که تصور میکنه یه رب تعبد تبد محصول خب اون بحث دیگری این همون بحثه شفر که مثل معلوم نایمی و آقای کویی آمادن خاصه این حسابه که آقای درستش رو جزایی نقطه هست این نقطه هم اما فکرمان برای تون روشن شد گانگو قاد اصحاب ما میگن این روایت خودش تقییه صادر نشده اما زیربناش تقییه است. این مرادش رو نینه کن دقش بکنیم این روایت چون اینجور نیست که لام اصلا بعض از اهل سنت گفته باشن اهل سنت در صورت عادی هم روزگی روزش روستیم خواهد صورت جلب باشیم یک اصطلاحیه که گاهی میگه این روایه زیر بنا شبیه است، نه خود, و خود این که میگن زیر بنا شبیه است شما اصطلاحاً دیگه خوب همچه خوبی هست بلا ما اهلسانان درخو نشوده اصلا متعرض این فرق نشوده چون در حال آدی میتونه روزه بگیره این روشنی شد برستان این ما یه اصطلاحیه یه حالا من این اصطلاح هم اینجا تو دیر این خیلی ما این هفت زیر بناه شبیه است. یعنی چه زیر بناه؟ یعنی این باید این روایت که میگه اگر در حال جهر روزه گرفتی شما همزان درسته باید فرز باید شما امر رسون دارید باید اینجور فرد توفن گیرد این راهی نداره خوب نداره قصودی باید یه فرزه امری داشته این فرزه ام با موانی احل سنت در میاد چون میگه یعنی شما هم امر به افتازه هم امر رسوم هم, هم دو یعنی اینکه آمد در صورت جرح یک ظرافتی داره ما در چند باب در واقعش اینو داریم خود روایت بین اون حکم تحرییه نیست یعنی تو مصادر اهل سنت نیامده دقت می‌کنید اما میگن زیر بناش طبیعت انجام همینطوره این روایت به این حکم در کتب اهل سنت نیست لكن این حکم کی درسته دقت این که وقتی درسته که شما امره به سوم رو تصور بکنی شما الان داشته تصور پیدا کرده یه تصوری که محروف علمایشی هست میگه اصلا انسان و مسافر اصلا تکلیفش خضاست امره به روزه ماه همزان نداره این یک محروف یه زیرون زیر های دو میگن نه امر به سوم داره اما اجازه افتار هم داره هر دو تو ماه همزان اگر روزه نگره غذا خود دقت پس قضا رو قبول میکنن اما اجازتا نه ترخی... ترخیص نه عزیمتا نه الزام یعنی شما امر به صوم داری تو محرم هستید جواز احثار هم داری اگر روزه نگرفتی اگر روزه نگرفت و لذا گفتن اینطور نوشن و من کانل میکنم مریضه او علی سفر فلم یه فائده من ایام دیگر این فلانیا رو اضافه کردم گفتم ما در مبنای شیعه بر این هم همون معنای اوله که اصولا تکیف به صوم تو محرمزا نداره تا مصادف نداره مریض نداره خب اگر نذاره این سوال پیش میاد چطور در روایت فرمودن که اگر جاهل بود درسته کدام امر انجام داده؟ اجباری ظاهر آیه مبارکه که اصلا مسافر فی نفسه قضا بکنه این زار ظاهر است. جهل و عیل من که در افکام محصر نیستم حالا خیلی خوب فقط این جهر عضو باشه تو مقام تحجیم مشکل کار اینه که عمر درست میکنه جهر که عمر درسته میکنه شما تصور بکنه من اگر جاهل بودم که, ماه... که ماهرمزان روزه در سفر ازامی روزه اینه قضا ارزامی حالا اگر عمدن روزه گرسن پوشی اینم بازره خب شما این عمدن بازره چون عمر ندار شو شد جهلا درسته خب عمر نیست نیست که چه با هم میکنم جهلا که این مشکل کار رو لذا آمده مرموم نایین پس یک تحلیل یک بحث فقهی ما داریم. و اون در مقام فتوه هست یک بحث تحلیل و اصولی داریم. استادان اوزیرم گه یعنی حقوقی قانونی شما چیجت تصویر سه حتی این مطلب رو میکنیم. اما یکی از همون نزاعات معروف که بعدا به اخبار از سریا که داشت، شرایط همین بود که ما رو بفهمیم ولی حالا ما عمل میکنیم کار نداریم. ازش رو قاضی بشن قاضی چیز ما کار می خب اون خب بعضی خب دیگه دیگه با استاد آب نفر اعلی تمرکز کرد اعلی چیارو بعضی دیگه استعداد چی با کت نزد اخ... میگن شما قوائد برکن خب این بحث دیگری قوائد برکن بحث دیگری خب مرمومه این آین آمدن از این راه وارد شدن که توچی کردن اون تکلیف و من ایام من اخر مقیده به به اصطلاح علم اگر آدم بودی خب البته ایشون باید یک تکمیلی هم بکنن و این یک اطلاقی هم باید درست بکنن چیدی و لگه ایشون این انایت رو باید بکن که اون امر سمس سفر چطور درست شد اون امر سمس چطور آمد مگر بگم و اطلاقات کنه بله کمیسی ها بازم بگم به با اطلاقات من اونها خوبی این فرمانه نه این برمیگرده مقام تنجز و انتصال به حال با شخص خودش هست تکلیف بلاحاد علم و جهر مطلقه خب اینجا همین مشکلتش میادیگه اینا باید یک نقطه فرنی که این ما çıkart. پس این سه تا فرع شد. ان شاء روشن یه جهت فقهی داره که اون در خودش از فقه متعرض می‌شه. هر کدوم موردی خودشه. یه جهت و اصولی داره. که اون کیفیت و این جور اعماله. مثلا نماز وقتی که جهری جاحرا خون، اخفا کردن اون درسته. اشاره کردم. دی روز ما یه طرح رو مطرح کردیم. امروز یه مقدار مطلب رو توضیح بدم. من کردم در خلال این بحث‌ها که در اسلام قطعن و جزمن غیر از خود کتاب که مصدر اصلی تشریع الادی بوده و بین مسلمان ها به عنوان مبدأ اول و مصدر اول و خود رسول الله و تمسکات به آیات مواره که غیر از این جهت سنت پیغمبر هم به عنوان به قصده خودشون مصدر دوم تشریع اسلامی است در اینکه که سنت اجمالا معیم بوده سنن قولیه بوده سنن فعلیه بوده بعضی هاش به عنوان فعل انجام شده بعضی هاش رو کلام فرمودن بعضی هاش رو خودشون قبلا فرمودن چون پیغمبر اکران وقتی که آزمه هش شدن که جات در سال دعیه هجری قبل از هش فرمودن خود و علمی مناسک کرد یکی از بحثایی که اصولا بعضها بین مسلمان رو پیدا شد چون پیمنبر در این کار ادهی از اعمال انجام دادن ادهی گفتن اینها واجبه واجب نیست مثلا سر مبارک در منا تراشیدن شیعه گوندن چون پهیمان بر در منا تراشید پس سنت اینه که در منا تراشید همه سنت گفتن در لازم نیست تو رو بینید خارج منا هم سر میتراشد و الاخری تصدیر تو منا باشه هر تو منا باشه قربانی کرا مسلم بود که در منا بود و بعدم در مکه و الاخری یعنی این صحبتی که دوستا نیست مسئله ویدا چون هرج اساس شکر اساس عبرالیمی داشت برای اثر گذشت زمان که سابقا هم عرض کردم چون یهود و نسارا حج نمی آده با اینکه در مسادر خودشون هست در صورات هم هست که از عبرالیم به مکه آمد اما عملا یهود و نسارا حج رو رها کردن و مشرکین میانه. آده مشرکین هم حج عبرالیمی رو با مخایم شکر رو به خودشون مندود کرده بودن بطا و غیر بطا دیگه اون حالتش رفته بود، تازه پیغمبر اما برام یه تغییراتی دادن مثلا پیغمبر میقات قرار دادن میقات مال ابراهیم نبود. از سبراهیم حدود حرم رو قرار داد. دقت می‌کنی؟ امیکنیم و اینها. و اما پیغمبر اکرم قرار دادن. به اصطلاح که ما میگیم به جای گذران ادنجه این کار از ابراهیم بود اما پیغمبر اکرم میقات کردن. به علاوه احرام از میقات قرار نه بود. این میخوام وارد بحث حج و عید بشه. این منشأ بحث شد بعدها بین مسلمان ها که مثلا کدام قسمتش کشبز سنن الزامی یا الزامی یا الزامینی البته در خود حجت الوزا بعد از اعمال منا به نظرم الان تو ذهن من سعی بخاری هم داره مسلمی ظاهرن داره, داره, داره در وقت ما هم سعیه هست خود به من بعد نشته بودم بعد از منا افران مناس فعال میکردن یکی میگون مثلا من حالا به مقدم کردم گفت من، و از من مقدم کردم، و کان یا کل داده که لب است، به لب. تهران هم لا لب است، به. این گفت من، این کارو انجام داده زمان گفت من این کردم، و یا خود لب است لب این هم داره. و بعد از سیرم بلکه من از کلم زمان نبود، که کوتاه بود و مشکلات کم، تبدیل مشکلات دیگری بود. به این فکر می‌آمد، زمان عمر به فکر تغییر سونه ابتدا. این یک بحث خاص خودشو داره اینجا جاش نیست، طولانیه و بحث بسیار ضروری یعنی که از بحث‌های ضروری برای هر کسی که می‌خواد در فقه اسلامی وارد بشه، تمیز این فرائض از سنت، هم به لحاظ تشخيص دقیق فرائض، هم از اون مهم‌تر به لحاظ آثار، آثاری که در سنن، تعریف سنن با سرائس دارن و البته فشیس خودمون سنن کار بسیار سختیه کار بسیار مشکلیه چون سنن رو عرض کردم یک نواخ نبود بنا بود اگر صحابه جمع بکنن متفرقات جمع بکنن نمیشته های ای بود و عرض کردم به طور رسمی که می نوشتن همچنین رسمی حلنی که دیگه مثلا سنی ها خیلی عبار زهوریش نداشتن نوشته بود که عبدالله پسر امرعاس حدود 2000 که اختصاصی تایبه صادره بودش تاریخش هم ذکر این حدود 15 سال و خردی ای عمر این شخص بود پسر امرعاس معروف عبدالله 15 سال نه دقیقاً و در ماه رمضان سال 8 هجری بعد فتح مکه از اونجا شروع کرد نوشتن تا آخر وفات پیغمبر ایده از امور رو زبط زد بعد قبل از این از سال هفت به خاطر را آمول میگفتن چون سال ششم که سال و قدیدیه شد ما پیغمبر سلسل با مشکی دیگه گروه گروه از مناسق مختلف میانن و مسلمان میشدن از یمن تا یمن غیر یمن به تحبیرست به سال هفت سوم به اصطلاق گروه های اعزامی گروه های اعزامی از عبدالقیس و از و تیو نمیدونم فرض به همین طایف و یمن اشائر مختلف یمن و جعفی و... که این ها ها هم برای خیلیشون عنوان پیدا شد از این جد درن کسی بود که اولین کسی بود که از یمن آمد برای اسلام پیش پیغمبر اکرم من با من بحثا نیم خواب بشن. یه مقداری رو پیغمبر اکرم از سنن رو از این بخش شروع کردن از پنسونن پیغمبر یه خوبی داره که تاریخ هاش تا حد زیادی مشخصه و این داره. یعنی انصافا اگر رایی میخوان توی این مسئله کار بکنن این بسیار کار خوبی است و میتونیم ما یه مشترکات تراوادی رو با اهل سنت در این جهت پیدا بکنیم این تدوینه علاوه تدوین که بعده اونانسون اعش شد اولین بار رسما اند ورود رسول به مدینه است یک اتفاقیه یک به اصطلاح پروتکل میگه یک قراردادی معاهده ای رو با یهود مدینه پیغمبر امزا کردن در 52 ماده اساس شده به فارسی هم با عنوان نخستین قانون اساسی هم اسم این 52 ماده اینجور گذاشتن یه نفر از مستشرق این جمع کرد از صد و مختلف جمع کرده در 52 ماده کتاب لطیفیه این اولین سنن قرآن برعطاره که یه مقدار از این سنن رو در همین کتاب الاحوال ابو عبید ابوزه من نمیخوام وارد بشم شاید اشاره میخوام بکنم که یک بحث بسیار لطیفی مطرح شد چند تا نامه پیغمبر به بزرگان اشائر یمن و غیر یمن ای این اینها همه جزو سنن تو تدریج اون مشکل اساسی معرفت سنن بود کیفیت و حقیقت این سنن بود چون بعضی از سنن پیغمبر موقع بود این هم خودشی که از نقاط اختلاف بین ما وحل سنن ما اگر از این راه تراعض و سنن اصولا وارد بشیم و تحلیل تاریخی بکنی این خیلی از نقاط اختلاف ما رو با اهل سنت روشن میکنه در این خود خودمون با اونها هم خیلی موفق بزنیشید یعنی دقیقا میشهیم براشون تشریف دادیم نقطه اختلاف ما با اونها از کجا شروع شده خرصوی مثلا پیغنبر در جنگ خیبر، چون مردم اولاغاشون رو میخوردن اولاغ خانه بسا... نه اولاغ بحشی اولاغش که اشتا اولاغ خ... بز پیغمبر میخواستن قناعیم 245 کیلومتر بین خیبر و مدینه قناعیم رو به مدینه بیارن علاقه رو خورده بودن پیغمبر وسیله نبود فرمونی که علاقه رو نخوریم نکشیم و نخوریم عهل سنت اون رو نحیه تحلیم گرد قاله به حرمت هم دیگه لغم و رحلیه رو خراب دید تو روایت ما ده که این نحیه سنت ها. میخاطرن همونجنگ بود شارجه جنگو خنای می‌دادن تا مدینه وسیله باشه اینجور نبود که پیغمبر نهی دائمی بکنه از اصل مخاط این خدمتتون هر بود یکی از بحث‌های بسیار لطیفی که بعدها از کل اولین بار طرح جمع آوری این سنن و تدوین سنن توسط امیرالمومنین داده شد من زمان و عمر عمر به علاوه روز یک ماه با اون مجلس مشاورتیش مشورته آه تصمیری رو تدبیر نکنه او یه اشکال وقل ما هر کتابی داشت یا و دیگری داشت که نگه تذویر میشه میشه که دار مشنای اهل یهود میشه این ملحق به تورات میشه و جزه دوم تورات میشه آن که من یه روزی هم اشاره کردم این خیلی الان لازم بحث بشه بعد از عمر خود امیرالمومنین نوشتن تذویر کردن امیرالمومنین در مصادر عامه از مصادر ما جزء کسانی که مستقیم از زبان پیغمبر که به تذویر روایت داره منسل غیبی فرقه این شکاف از شکاف از دولت پیغمبر به دولت پالسی ما قاله کتب او من فرق فی یعنی هیچی واسطه نداره پیغمبر فرمودن و همین رو مومین نوشتن تغییر اصلی عربی زیبایی هست فلق شکافتن فی هم همون فی دهان مراد دهان نه فی جارو مجروبه فی اسم که اضافه شده به ها دقیق فرمودی؟ این رو پی هم رو در همین ک به انرستانت مثنع بر شهرت یا ابزار اززار نریشه و یا ابزار از دقیق هم هست اینکه از آضواده در آستان رو تیم تقیق علم هست ممسله دارد آن مثلمه که من روزی پیم م روزز من پیشن بوده علی زارجا یکیه جیل لا پوست حیوانی بود همین پی بعد میفهمم معمون نوشتم پر کرده تمامش رو پر کردم تمام ااعابش و هوواشی رو همه رو مامانه این هست یعنی نوشتر البته در زمان تدریم به خاطر همون جریانات حقائدی از یک طرف من شون معتقدم سر به این که در تدریم حاضر منشان به عنوان مراجع کنم شاید اون در اون به وسیع بود مثلا خود یکی از علقا حضرت ابن عبدالی در شهرش میگه مسلمان جز علقا به حضرت این جز جای شک نیست لیکن اینشون میگه وسیعه در هست در بعضی هستن که منکر بودن. اما اینقدر شواهد در صدق بر برای حضرت سرابانه که جای این کار نیست اصولا لگه برزت بود تشکیلات یعنی عمر تشکیز داده بود که صلاح نیست برای تدوین سنت به وسیع رسول الله مراجعه بشه این اصبات رضایت می کنم این حالا من باید این بحثانه می خواهد بشم چونجا کنجا نیست می روشم کلامی عقایدیه و حصای هم هست تمام اینها ها در شواهد اهل سنت موجوده به اینه در کلمات ها اونها موجوده پرابان همه از شباهل احتیاجه به که حالا اصلا وقتی اصلا وقت می که در این مختصری که من اون وقت دوگومی نفری که به ظاهر به فکر تدوین این سنن جمعه ولی اقتاد عمرت نبدالده سال سده هجریه عمرت نبدالده سال 99 هجری خریده شد بلی مرغان تهرمال وجود داشت یکی از این زنان بلی مرغان با متقابل در هر میشینست تا خبشتر سال صدیق این همه مکار مأخلقاتی ابرو عمر بن عبدالعزیز نمیشه حاصل دو سالیها خیلی آمدی که یو اوم این همه متفردهایی که عمر بن عبدالعزیز و جزو خلافهای لشکری ندی که خود عمر بن عبدالعزیز چندم تازگی مال تو نیستم دارم که لشکر خلافهای لشکری ساده چار تا راشدین اول همار از نروزی تنجمه این آجیدم گفته شیخون من هم حال اول که از خلافت راشده خامسه خلافت خامسه مرادش مهم در دلد میده این کلن دو سال سال سر سال... سال اول سال دوم تقریبا از خلافتش دستود داد این سنن جمع بشه و از کلم مسادر این سنن هم تقریبا در شما گفتن همه شو نگفتن همه شو نگفتن همه دیشو گفتن ت من یه جونی یه قرار بود که امرد این عبدالله داشت. این امر زن از انصار دختر اموی اون ابو بکر نه امرت نه هزم. یکیشم اون بود. ما رو ابو بکر بود. که من همین شلوصیج از کردم. این اختلاف بیاید زن و مرد در حق در همین کتاب آمده این در کتاب ابو بکر نه امرت نه که از سنن به در بوده. این مجموعه سننه در کتاب سنت سنتم متن اون کتاب موجود در آن البته کم داره این کتاب من از کردم مورد تریده ما هم واقع شده این کتاب عریض وقتی نمره نهر که جز سننی بوده که از زبان رسول الله نوشته شده یعنی نوشته شده فرستاده شده به یمن شد. یه دختر اموی هم که اسمش امره به امره بنت عبدالرحمن اون هم داشته که از کر عمر بن عبد میگه مجموع این سنن رو جمع بکنید. یکیشم سنن امره. چه جوری چند تا با... چند تا اثر صدر بعضی از مادر سنن عمر. نه یعنی عمر یعنی چی؟ عمر چه عمره؟ های آخرشه. گفتم این مثلا عمر بن عبد، سنن عمر خطاب جمع بکن. نه این عمر خطاب نیست. این امره بنت عبد الرحمن علی درخانه این مجموعه رسون و جمع هم شد تا که قبل از تدوین نهایی عبد به صلا نظر کشته شد هم تدیر گزارش کردم نظرشان تحملش نکردم و از دانش بردم این مون این مجموعه به هم خورد این مجموعه چاک حالا من وارد این بحث نشم این بحثای اندازه تاریخی است که اندازه من نمیخوام وارد بشم تدریجا این بحث سنن تو بحث و اصولی هم آمده ما خب ایجاد بارد بشه اونجا کار بگه اون یاد تاریخیو مثلا این بحث در اصول مثلا شد که حقیقت سنن چیه مثلا حقیقت این سنن نبی چیه اهل سنت بیشترشون برای بابرن که سنن نبی همون احکام الهیست که در الهی است که ما نمیفهمیم بند مثلا ورکه و مراکهی در قرآن هست که ما می نداره. اما ذکر و رو ما از قرآن نمی اما پیغمده از این فتفت به هم دارد بکر از این آیت هم میدنم. مثلا رو می زن ازا جای نسل آل کردیم ذکر این که مثلا درکت سه و مچاره با تسیاد باشه پیغمده برد. از این رو اصطلاحا اینجور میگن، و ولذا اینا معتقدم که اینها هم کلن وحی الهی نیست لاکه وحی الهی دو قسمت داره یک وحی شما میفهمید اون اسمشی پرارس بودشت یک قسمش ما نمیفهمیم اسمشی سنن بودشت هم این یه بر در فعالات ما تأکید بر این است که سنن اصلا وحی الهی نیست سنن جعل خود رسول الله هست. بله این خدا بود که خود رسول الله رو نفسش رو یک کمال خاصی انایت کرد در شب مبعث از توی در شب مبعث احتمالا مثلا در شب نوزول قرآن چون یه بحثی هست که شب مبعث 27 سن اما شب نوزول قرآن در آواخر ماه رمزانه این تا با هم فرق با دام بازم اون بحثم نمی کنونجا اون در شب مبعث خداوند متعال نفس قیقم بایده که استکمال خاصی بخشی که صلاحیت فهم جمعی احتیاجات و امت و سقیل و کبیر رو پیدا کردن ترون احتیاجات جرد کرده. اصل خود این به خدا برمیگرده اما جرد از رسول الله حالا این بین بعضی از مصادرشون وقتی اونجوری مثل آشق بگن شون محاسم بحث و ایش آشق میاداری بگن از بحیم میادار اکتفا میکنه یه بحثی از بین زراره و همران هر دو از بزرگان هرساون برادرز هر و برادر, برادر, برادر. همران اخشاری سند وقتی شخص رسول اعظم و زورا را اشره زورا مثلا حالا من یادم نمیخشه شو میگشتن رسولان مثلا زورا میگفته که اوغاز خدا قرار داده جبریل جبرئیل برای پیغمبر گفت همران گفت نه اوغاز رو خداوند مخفر کرده پیغمبر پیغمبر قرار داد اینکه نماز زور در این وقت باشه اهل در این وقت باشه معادل که این وقت باشه اشا تو این وقت باشه جبرئیل چون روز جبره سنیان برن نشان دار مثلا الان که زباده نماز دو بعد چند قدم گفت نماز از بعد وقتی غروب نماز مغرب وقتی که دار نماز اش درسته این رو نشان داد. اما جعل خود رسول الله کرد جعل مال خود رسول الله جبرهی و قول اموزیوان نظر جبرهی نظر مسترکی بوده نه خدا جعل کرده نه جبرهی خود رسول الله جبرهی لابد دار این دوتا بینن پیش ما سادر اختلاف از امامون و هم با همون سنگه پیغمبر جرد اوقات بید رسول الله ده. خوب دقت بکنیم تعین اوقات در اختیار رسول الله بوده این بحث ها من حالا نمیخوام بازش بشم جه خودش داریم نظر شما تو بحث تا آرزم مثل. یکی از مباحث مهم اون نسبت و رابطه سنت با فریضه هست یه مثلا در قضا بین سنت و فریده مثلا در روایت داره که اگر یه مردار هست قسط جنوب هست مییدی هم هست امام می فرماه جنوب قسط بکنه میید رو قسط نمیخواه بعد می فرماه فین قسط جناب فریده و قسط میید جنوب... سنت و چون این که میید باید قسط داداشه از سنن فیقن بره همون قسط جنابت در قرآن آمده این خریزه اون سنته فریضه در مقام تزاهن بر سنت مقدمه این یکی از آثار این یختفونه گفت که علم رسوله الف و باب مناله یختفونه کلی بابن الف و باب این فقط یک میلیون اصله باب یا نه یعنی اصل یال خدا نیکشت فرسوسیتی دیم هزار در هزار یک میونی شدید این خودش یختفونه اینها الف و باب یکی یکیشم لا تنقضه سنت از فریضه که دیروز متعرض شدید حالا چون وقتمون شده من تا اینجای بحث رو بحث میکنم فردا انشاءالله تعالی وقتی لا تنقض رو یه جور خاصی ما معنا میکنیم که در نتیجهش ممکنه با خیلی از مبانی متعارفی که حالا ما و الان هم داریم در اصول خودمون و علمای های در وقت اطلاق و تقید و ترکب و ما شابه دالت اصلا کل تو اونها فرق ایجاد بکنه انشاءالله تعالی